مطرب اشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر نقمه که زد راه به جایی دارد عالم از ناله اشاق مبادا خالی که خوش و فره بخش هوایی دارد پیر دردیکش ما گرچه ندارد ذر و زور خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد محترم دار دلم که این مگس قند فرست تا هوا تو شد فر همایی دارد از عدالت نبود دور گرش پرسد حال پادشاهی که به همسای گدایی دارد عشق خونین به به طبیبان گفتند درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد ستم از غمز میا که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد نغز گفتان بطه ترسا بچه باد پرست شادی روی کسی خرکه صفای دارد خسرو با حافظ درگاه نشین فاتحه خواند و زبان تو تمنای دعایی دارد